Sadem trees, saddle trees, bearing strange fruits, strange blood at the lead, blood at the lead, blood at the root, blood at the root Mr. Mr. Fardo Azbane, Raf, Hiruzamruzafardo Wood as Bane, Raf, Hat Bulan Shutor, I'm halvatan, iram Miram Dar shirt, touchbars and jiriam zanjir با درگیر بگو چند میگیری که هم پای من چی فروشی نیست ملی تینور که سمت روکه شهر فرنگ من پر از افکار مخروبه معامله کردم با حقیقت این تصویر و متنفرم از نفس خودم و این تصمیم و متنفرم من از پوچی این دنیا بازیگر جادوگر لوسی این عنوان حیف شد همه حرفام کنار اوتوبان حیف شد ماشین ها حرفامو من تو امقم هم آقته این مردمو دیدم عید شد فکرها لباسه که نپوشیدم عاشقه یفاهشم به حقیقت محس آخرین تل اسمم روزای من پر خاک سر زنجیریم من همه جو پخش و پل و هرور شهر بوی خونه هنجرم از نره های بحشت شهر اون تناس اون ما این تک بودن من جرعت محسه گلوی سنتی مشتم مچاله کردن گردت دسته شبهای پرستشویش سیگار و غم تهریش نیست منم بانوی من نیست در این تردید با غصبلی آروم میگدم و میستم ناخوم میجام یه روزی خودم رو نابود میکنم درگیر تو همون مشکل قبلی سوپا خودم رو از بابوس می‌شورم وضعیتو ناجور میدونم از موضوع های داغون میخونم درگیر تو همون مشکل قبلی برقا پرپر پر حرفم برور رفتن دکتر خوب نشدم بهش گفتم من چه مرگمه گفت درگیر تو همون مشکل قبلی میوه های توی این کوجا مزه خود میدن این خواب پاگش بخون درگیر تو مشکل قبلی دنیا میزنه دست به من میگه که اون لقرت فمن توی جنب خنده من روزمره چرا نه بی پرده حرف بزن خستم چقد روی قره جنگ گولولاتو به قلب من بزن مسخره میشی با طنز تلخ من اگه خوب زیادن یادن بد منم منو بگیر تا نره مرطرف من داغم به پاس سر نرم میمیرم اگه شوله ور نشه طنز تلخ من جنگ و خشم من هیچ وقت چی کم نشود از درد قلب من لعنت توند من دلیلی شد واسه درد حرف من بزور با آتش بازی کنم تموم اسمو خالی کنم بر کی صدای منو میشنوه تموم قسمو خالی کنم بزور با بازی کنم من به سوختن راضی شدم با زندگی این آدما کاملا خودم آری کنم Säkta bugga säkta En roos rooshe tavallonem bude Och som i nabude skuld konem Bia keek bokharin, bala biarin Bia keek bokharin, bala biarin Wosem to miyareh seks asa is Wosem en hiphop isk haram isk Sudden cheese There is a change for that lead All that the road Sudden I'm no, no.